مصنوی معنوی مولوی برنامه 147 بازگردانیدن صدیق رضی الله عنه واقعه بلال را و ظلم جهودان را بروید و احد احد گفتن او و افزون شدن کینه جهودان و قصه کردن آن قضیه پیش مصطفی علیه السلام و مشورت در خریدن او از جهودان. بعد از آن صدیق پیش مصطفی گفت حاله آن بلال با وفا، کن فلک پیمای میمونبال چست چوست، این زمان در عشق و اندردام توست. باز سلطان است زانجوغدان برنج، در حدث مطفون است آن زفت گنج. ها بر باز استم می کنند، پر و بالش بیگناهی می کنند جرم او این است که باز است و بس غیر خوبی جرم یوسف چیست پس جغد را ویرانه باشد زادو بود هستشان بر باز زان خشم جهود که چرا می یاد یاز قصر و ساعد آن شهریار. در ده جغدان فزولی می کنی، فتنه و تشویش در می افگنی. مسکن ما را که شد رشک اسیر تو خرابه خانی و نام حقیر. شاید آوردی که تا جغدان ما مرتو را سازند شاه و پیشوا. وهم و سودای در ایشان میتنی. نام این فرداوس ویران میکنی. بر سرت چندان زنیم عیبت سفات که بگویی ترک شید و تر رهات. پیش مشرق، چار میخش می کنند، تن به شاخ خارش می زنند. از تنش جای خون بر میجهد او اهد می گوید و سر می نهد. پندها دادم که پنهان داردین، سر بپوشان از جهودان لعین، آشق است، او را قیامت آمده است تا در توبه برو بسته شده است آشقی و توبه یا امکان صبر این محاله باشد ایجان جان بس ستابر توبه کرمو عشق همچون اژدها توبه وصف خلق و وان وصف خدا عشق زوصاف خدای بی عاشقی بر غیر او باشد مجاز زانکه که آن حسن زرندود آمده است ظاهرش نور اندرون دود آمده است چون رود نور و شود پیدا دخان بفصورد عشق مجازی آن زمان واروید آن حسن سوی اصل خد جسم ماند گنده و رسوا و بد نور مه راجع شود هم سوی ما واروید اکسش ز دیوار سیاه پس بماند آب و گل به آن نگار گرددان دیوار به مه دیوار قلب را که زرز زروی او بجست باز گشت آن زر بکان خود نشست پس مثل رسوا بماند دود وش. زو سیاه روتر بماند عاشقش. عشق بینایان بود بر کان زر. لاجرم هر روز باشد بیشتر. زانک کان را در زری نبود شریک. مرحبا ای کان زر لا فیک. هر که قلب را کند انباز کان بارود زر تا بکان لامکان عاشق و معشوق مرده از راب مانده ماهی رفت از آن گرداب آب عشق ربانیست خوشید کمال امر نور اوست خلقان چون زلال مصطفی از این قصه چون خوش برشکفت رغبت افزون گشت او را هم بگفت مستمع چون یافت همچون مصطفی هر سر مویش زبان شد جدا مصطفی گفتش که اکنون چاره چیست؟ گفت این بنده مرورا مشتری است. هر بها که گوید او را میخرم. در زیان و حیف ظاهر ننگرم. کو اسیر الله فی ارض آمده است. سخره خشم عدو الله شده است. وصیت کردن مصطفی علیه السلام صدیق را رضی الله عنهو که چون بلال را مشتری می شوی، هر آینه ایشان از ستیز برخواهند فزود بهای او را. مرا در این فضیلت شریک خود کن، وکیل من باش و نیم بها از من بستان. مصطفی گفتش که ای اقبال جو، اندرین من می شوم باز تو، تو وکیلم باش، نیم بهر من مشتری شو، قبض کن از من سمن. گفت صد خدمت کنم، رفت آن زمان سوی خانه آن جهود بی امان. گفت با خود کز کف تفلان گوهر، بس توان آسان خریدن، ای پدر، عقل و ایمان را از این تفلان گول می خرد با ملک دنیا دیو غول. آنچنان زینت دهد مردار را که خرد زیشان دوست گلزار را. آنچنان محتاب بنماید بسر، کز خسان صد کیسه برباید باید بسر. شان تاجری آموختند، پیش ایشان شم ادین افروختند. دیو و غول ساهر از سحر و نبرد، را در نظرشان زشت کرد. زشت گرداند به جادوی عدو تا طلاق افتد میان جفت و شو دیدههاشان را به سحر دوختند تا چنین جوهر به خس بفروختند این گوهر از هر دو عالم برتر است هین بخر زین تفل جاهل کو خر است پیش خر خرمهره و گوهر یکی است آن اشک را در در و دریا شکیست منکر بهر است و گوهرهای او کی بود حیوان درو و پیرایه جو در سر حیوان خدا ننهاده است که بود در بند لعل و درپره است. مرخران را هیچ دیدی گوشوار گوش و هوش خر بود در سبززار. احسن تقویم در وتین بخوان که گرامی گوهر است ای دوست جان احسن تقویم از عرش و فزون احسن تقویم از فکرت برون گر بگویم قیمت این ممتنع من بسوزم هم بسوزد مستمع لب ببندین و خر این سو مران رفت این صدیق سوی آن خران حلقه در زد چدر را برگشود رفت بی خود در سرای آن جهود بی خود و سرمست و پر آتش نشست از دهانش بس کلام تلخ جست کین ولی والله را چون میزنی این چه است؟ ای ادوی روشنی گر تو را صدقیست اندر دین خود ظالم بر صادق دلت چون میدهد ای تو در دین جهودی مادهی کین گمان داری تو بر شهزادهی در همه زاینه کژساز خود منگر ای مردوده نفرین عبد آنچه چه آن دم از لب صدیق جست گر بگویم گم کنی تو پا و دست آن ینا الحکم همچون فرات از دهان او دوان از بی همچو همچون از سنگی که آب شد روان نه پهلو مایه دارد نه از میان اسپر خود کرده حق آن سنگ را برگشاده آب مینارنگ را همچنان که از چشمه چشم تو نور او روان کرده است به بخل و فتور نه په آن مایه دارد نه پوست روی پوش کرد در ایجاد دوست در خلای گوش باد جازبش مدرک صدق کلام و کازبش آن چه باد استند در آن خرد استخان کو پذیرد حرف و سوت قصه خان استخان و باد رو پوش است و بس در دو عالم غیر یزدان نیست کس مستمع او قایل او به احتجاب زن که الازنان من الرز ای مصاب گفت رحمت گر همه آید برو زر بده بستانش ای اکرام خو از منش باخر چو می سوزد دلت، بی معونت حل نگردد مشکلت. گفت، صد خدمت کنم، پانصد سجود، بنده دارم نکو، لکن جهود. تن سپید و دل سیاه هستش، بگیر در ده تن سیاه و دل منیر. پس فرستاد و بیاوردان همام بود الحق سخت زیبا آن غلام آنچنان که ماند حیران آن جهود آن دل چون سنگش از جا رفت زود حالت صورت پرستان این بود سنگشان از صورت مومین بود باز کاردس تیزه و راضی نشد که بر این افزون بده به هیچ بود یک نصاب نقره هم بر وایف زود تا که راضی گشت هر سه آن جهود خندیدن جهود و پنداشتن که صدیق مغبون است در این عقد قهقه هزد آن جهود سنگ دل از سر افسوس و تنز و غش و غل گفت صدیقش که این خنده چه بود؟ در جواب پرسش او خنده فزود گفت اگر جدت نبودی و غرام، در خریداری این اسود غلام، ز استیزه نمی جوشیدمی. خود با عشر اینش کو کوبن ازده من نیرزد نیم دانگ. تو گران کردی به را به بانگ. پس جوابش داد صدیق ای غبی جوهر دودی بجوز چون سبی کو به از من همه ارزد دو کان. من بجانش ناظر هستم تو بلاون ذره سرخ است او سیاه تاب آمده از برای رشک این احمق کده دیده این هفت رنگ جسم ها در نیابد زین نقاب آن روح را. گرمکیس کرده در بعی بیش دادمی من جمله ملک و مال خیش. ورمکاس مکاس ای من زهتمام دامن زر کردم از غیر وام، صحل دادی، زان که ارزان یافتی، دور ندیدی، حقه را نشکافتی حقه سربسته جهل تو بداد، زود بینی که چه غبنت افتاد حقه پرلال را دادی باد همچو زنگی در سیاه روی تو شاد عاقبت با حسرت گویی بسه، بخت و دولت را فروشد خود کسه. بخت با جامع غلامانه رسید، چشم بدبختت بجز ظاهر ندید. او نمودت بندگی خیشتن، خوی زشتت کرد با او مکروفند. این سیاه اسرار تن اسپید را پرستانه بگیر ای جاش خواه این تو را و آن مرا بردیم سود هین لکم دینون ولی دین ای جهود خود سزای بودپرستان این بود جلش اطلس، اسب او چوبین بوده همچو گور کافران پر دود و نار و از برون بربسته صد نقش و نگار همچو مال ظالمان بیرون جمال و از درونش خون مظلوم و وبال چون منافق از برون سوم و سلات و درون خاک سیاه بینباد همچو ابر خالی پرقر و قر نه درو نفع زمین نه قوت بار همچو بعده مکر و گفتار دروغ آخرش رسوا و اول با فروغ بعد ازان بگرفت او دست بلال آن ز زخم زرس مهنت چون خلال شد خلال در دهان راه یافت جانب شیرین زبان می شتافت چون بدید آن خسته روی مستفا خرمخشی فتاد او بر قفا تا بدیر بی خود و بی خیش ماند چون بخیش آمد زشادی اشک راند در کنار خود کشید کس چه داند بخشش کورا رسید چون بود مثه که برکسیر زد مفلس برگنج پرتوفیر زد ماهی پژمرده در بحر افتاد کاروان گمشده زد بر رشاد آن خطاباتی که گفت آن دم نبی گرزند بر شب براید از شبی روز روشن گردد آن شب چون سباه من نتوانم باز گفت آن اصطلاح خود تو دانی کافتاب در حمل تا چه گوید با نبات و بادقل خود تو دانی هم که آن آب زلال میچه گوید با ریاحین و نهال سن احق با جمله اجزای جهان چون دم و حرف است از افسونگران جذب یزدان با اثرها و سبب صد سخن گوید نهان به حرف و لب نه که تاثیر از قدر معمول نیست لیک تأثیرش از او معقول نیست چون مقلد بود عقل اندر اصول دان مقلد در فروعش ای فضول گر بپرسد عقل چون باشد مرام گو چنان که تو ندانی و معاتبه مصطفی علیه السلام با صدیق رضی الله عنه که تو را وسیعت کردم که به شرکت من بخر تو چرا بهر خود تنها خریدی و عذر او. گفت ای صدیق آخر گفتمت که مرا انباز کن در مکرمت. گفت ما دو بندگان کوی تو. کردمش آزاد من بر روی تو تو مرا می دار بنده و یار غار هیچ آزادی نخواهم زینهار که مرا از بندگی آزادی است بی تو بر من مهنت و بیدادی است ای جهان را زنده کرده زستفا خاص کرده آم را خواسم مرا خوابها می دید جانم در شباب که سلامم کرد قرص آفتاب از زمینم برکشید او بر سما همره او گشته بودم زرتقاب گفتم این ماخولیا بود و محال هیچ گردد مستحیل وصف حال چون تو را دیدم، بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خشکش را. چون تو را دیدم، محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. چون تو را دیدم، خدای روح البلاد، مهر این خورشید از چشمم فتاد. گشت عالی حمت استو تو چشم من جز بخاری ننگرد اندر چمن نور جستم خود بدیدم نور نور هور جستم خود بدیدم رشک هور یوسف جستم لطیف و سیمتن یوسفستان بدیدم در تو من در پای جنت بودم در جستجو جنتی بنمود از هر جزب تو. هست این نسبت به من مده و سنا، هست این نسبت به تو قده و هجا. همچون مده مرد چوپان سلیم، مر خدا را پیش موسای کلیم، که بجویم اشپشت شیرت دهم چارقت دوزم منو پیشت نهم قده و او را حق به مده برگرفت گر تو هم رحمت کنی نبود شگفت رحم فرما بر قصور فهمها ای ورای عقلها و وهمها ایها الاشق اقبال جدید از جهان کهنه نوکن رسید زان جهان کو چارهی بیچاره جوست صد هزاران نادره دنیا دروست. ابشرو یا قوم از جا الفرج افراحوا یا قوم قد زال الحرج افتاب رفت در کازه هلال در تقاضا که ارهنا یا بلال زیر لب می گفتی از بیم ادو کوری او بر مناره رو بگو می دمد در گوش هر غمگین بشیر خیز ای مدبر ره اقبال گیر ای در این حبس و در این گند و شپش هین که تا کس نشنود رستی خموش چون کنی خاموش کنون ای یار من کزبون هرمو برآمد تا بلزن آنچنان کر شد عدوی رشک خو گوید این چندین دهل را بانگ کو می زند بر روش ریحان که تریست، اوز کوری گوید این آسیب چیست؟ میشه کنجد هور دستش میکشد، کور حیران کزچه دردم میکند. این کشاکش چیست بر دست و تنم، خوفتم بگذار تا خوابی کنم؟ آن که در خوابش همی جویی وی است، چشم بکشا کن مه نیکو پای است. زان بلاها بر عزیزان بیش بود، کن تجمش یار با خوبان فزود. لاغ با خوبان کند در هر راه نیز کوران را بشوراند گه خیش را یکدم بدین کوران دهد تا غریو و از کوی کوران برجهد.